این داستانک بافنده تنبل یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون توی یه روستا زن و مردی زندگی میکردند زن تنبل و بیمار بود و با کار کردن و زحمت کشیدن میونه‌ای نداشت وقتی همسرش به اون کلاف نخی برای ریسیدن میداد، اون به خودش زحمت تابیدن نمیداد نخها رو در گوشه میزش تا ریش ریش بشه وقتی هم که شوهرش به خاطر تنبلیش بهش سرکوف میزد زن عضر رو بهانه می آورد و می گفت، چطور میتونم رو تاب بدم در حالی که دوک ندارم اول باید از چوبای جنگل برام یه دوک درست کنی شوهر برای اینکه اون دیگه بهانه جویی نکنه گفت حالا که دوک رو بهانه می میرم و یه دوک برات درست میکنم سن که می دید بعد از تهیه دوک دیگه عذر و بحانه ای نداره و باید اون نخهای ریش, ریش شده رو تاب بده به فکر چار افتاد. بعد از فکرای مختلف به ذهنش رسید که پنهانی بدون اینکه شوهرش متوجه بشه به دنبال اون به جنگل بره. همسر روستایی وقتی دید که شوهرش داره یک شاخه درختو رو می بره تا ازش دوک درست کنه از همون پشت بوته بدون اینکه متوجه بشه شروع کرد به آواز خوندن. میگفت کسی که دوک میسازه خیلی زود میمیره و اون که نخو برسه زود حلاک میشه. وقتی مرد اون صدا رو شنید تبرش رو روی زمین گذاشت و به فکر فرو رفت که این چه صدایی بوده. دست آخر به خودش گفت چیزی نبود فکر و خیال کردم. آخه چه ترسی بد داشته باشم. اون دوباره تبرش رو برداشت و کارش رو شروع کرد. اما یه بار دیگه اون صدا رو شنید. مرد که سخت ترسیده بود دوباره دست از کار کشید اما کمی که گذشت دوباره دل و جرأت پیدا کرد و شروع کرد به تبر زدن همون صدا دوباره شروع به آواز خوندن کرد این بار مرد اونقدر ترسید که شاخه درخت و رها کرد و با شتاب راه خونش رو پیش گرفت زنش از راه میان بر و با تلاش بسیار زیاد ازش زودتر به خونه برگشت وقتی شوهر وارد خونه شد، زن با قیافه معصوم و حق به جانب انگار که هیچ چیز اتفاق نیافتاده از شوهرش پرسید بالاخره دوک پیدا کردی؟ مرد در جواب گفت نه، پیش خودم فکر کردم که نخریسیدن کار بیفایده یه. بعد همه ماجرایی که توی جنگل اتفاق افتاده بود و برای زنش تعریف کرد. بعد از اونم دیگه زنش رو به خاطر تنبلی سرزنش نکرد. اما بعد از مدتی بینظمی خونه اونو آزرده خاطر کرد. روزی زنشو صدا کرد و گفت این شرماوره که تو نخها رو همینطوری ولو کردی و کاری به کارشون نداری. زن جواب داد میدونی چاره چیه؟ چون ما نمیتونیم دوک تهیه کنیم بهترین راه اینه که تو روی زمین بشینی و یه سر نخو بکشی منم نزدیک تو بیستم و سر دیگه نخو به طرف تو رها کنم. به این ترتیب دو نفری نخ و کلاف میکنیم شوهر از این پیشنهاد استقبال کرد و با هم شروع به کار کردند وقتی کلاف نخ آماده شد مرد گفت حالا باید اونو در آب گرم بجوشونیم زن دمق شد ولی به ظاهر قبول کرد اون به فکر یک حقه تازه افتاد طبق نخشش صبح زود بلند شد آتیشی درست کرد و کتری رو روی اون گذاشت بعد مشتی پسمانده کتون رو در کتری ریخت و گذاشت خیس بخوره بعد نزد شوهرش که هنوز در رخت خواب بود برگشت و گفت من باید از خونه بیرون برم تو زود بیداش و مراقب نخهای داخل کتری باش اگه زود نجام و پیش از اینکه خروس به بخونه زیر کتری رو خاموش نکنی نخ به پسمانده کتان تبدیل میشه و از بین میره شوهر بلا فاصله بلند شد و بدون اینکه وقت تلف کنه یک راست به آشپسخونه رفت. سر کتریو برداشت و با دیدن پسمونده های کتان از ترس و ناراحتی رنگش پرید. بعد از این ماجرا شوهر مثل بره ساکت و بی حرف شد. چون فکر می کرد که خودش باعث شده نخها بشن. از اون پس دیگه حرف و سخنی از نخ و نخریسی به میان نیاورد و با اون تنبلی زن،